خب بسم الله الرحمن الرحيم درس الشي شمع المبتدأ والخبر مبتدأ وخبر ما هو المبتدأ والخبر مبتدأ وخبر كيف حصل هل يجب أن يكون المبتدأ معرفة آيه واجب است كمبتدأ معرفة باشي شهل متى تقيد النكرتو شهل زمان مقيد مشه نكره شهل ويك متى مخت النکرات... ن نکراتو... تختص و نکره تو فجزز ابتدا و به چه زمان نکره مختص می و و جایز است که مبتدا قرار بگیره م تمام و نکره تو فجزز چه زمانی نکره عام میشه و جایز است که چی میشه نه نکره... نه مبتدا چه زمانی نکره عام میشه و جایز از تو مبتدا بگیره. و جای است که چه قرار بگیره؟ مبتدا. ش نکره با شرط میتونه مبتدا قرار میره اصل بر اینه که مبتدا چی باشه معرفه باشه تا ای داشته باشه مل اصل فی الخبر در خبر چی چیزی اصل است اینا سوالاتی هستند که پاسخشون میده 38 المبتدا اسم مرفوع مجرد من الاعوامل اللفظیه للاسنادی میگه مبتدا اسم مرفوعی هست اسم چی هست؟ مجرد از آوامل لفظی هست مجرد یعنی قبلش آوامل لفظی نیومده روش روی مبتدا عامل لفظی نیومده و للإسناد و ارتباط اسنادی هم وجود داره خبر دیگه مصند میشه به مبتده و الخبر هو ما اسنده الى المبتده مطمم من معناهو میگه خبر اون چیزیه که مصند میشه به مبتدا و معناش رو تکمیل میکنه مانند العلم و مفیدون خب علم مفیدون مبتدای اسم مرفوی عامل لفظی هم نداره مفیدون هم خبره مصند شده به چی؟ به علم علم مفید است. علم؟ علم ها مبتدا مصند الیه هست والمفيد والمسنَد مفيدون شيء فوائد المراد خب بخو... گفته بود که روی مبتدا عامل لفظي وجود نداره الان داره توضیح بدك که منظور از عوامل لفظيه دیگه چی هستن میگه المراد بالعوامل اللفظيه العوامل غير الزائده لان الزائده تتدخل على المبتدا فيكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا میگه منظور از عوامل لفظی اون عواملی هستن که زائد نباشند زائد نباشند زیرا عاملی که زائد باشه اضافی باشه بر مبتدا وارد میشه و لفظش هم مجرور میکنه. و لفظش هم چیکار و محلش البته ما چون مبتدا جسمی مرفوعاته مانند هل من عالم فی خوب مین حرف جره زائدیه روی عالم اومده که مبتداه محلن چی لفظاً مجروره و محلن مرفوع فل مدینتی اینجا نهوی ها دوتی چیز بگن یا میگن خودشو خبر قرار میدند یا میگن نه خبر محزوفه در همچنین حالتی جارو مجرور باشه و این جارو مجرور تعلق به اون خبره محزوف داره. يندر وقهر هل من آل مستقر في المدينة؟ يهل من آل موجود في المدينة؟ يك شيء درن برش درن درن زربيكرات خبر محزوف. ورب رجل وضيع وضيعت ورب رجل وضيع كشقوابو یک جا نمشته بود چون اگر وابو فاصله بیاره باش انسان اشتباه میخونه رب رجل وضعین احراز بی ادبه مقام عالی چه بسا انسانی پایین، به دست آورده است با ادبش مقامی بلند مرتبه را خب اینجا هم رب رجل وضعین رجل مبتدای رب هم حرف زائده حرف جره روش اومده لفظا مجرورش کرده وليه محلين رجل مرفوع شو مبتدأي واضيعينهم سفته شيء أحرز بأدبه خوكي إن جملة شيء خبرش مقامنهم كي ما فقوله أليانك وصف سفته شيء تو المبتدأ يكون صريحا كما رأيت ومؤولا بالصريح بيجي مبتدأ یا سریح هست ماند زیدون قائمون ما تو که دیدی یا ما اوله به سریحه در تأویل چیه؟ سریحی ماند انت سومو خیرون لکن اینجا انت سومو خیرون لکن ببین این سریح نیست این انت سومو فیلم مزاره ولی از اونجای که این انمیاد اینو تبدیل به مصدر میکنه مصدر هم جز اسمه لذا در تأویل سیامش میکنیم در تأویل چیه بیش میکنیم؟ تون أنت سوم السيا مديك؟ بس أنت سوم خير لكم در واقتشونين السيا مكم خير لكم. سيا بس إن در تأويله صحيح؟ صحيح؟ ليست. سأل مبتدا ويكونوا في في أول. في أول الجملة الابتدائية. ميجا مبتدا مي باشة در ابتداء جملة ابتدائية. مبتدا مي باشة در أول جملة. بولدت القناعه غننت قناعت بی که القناعت مبتدا هست قناعت جاست مبتدا غنن هم خبرشه همچنین در ابتدای در اول جمله حالی هم قرار میگیره مانند سرت والقمر فی کبد السماء رفتم در حالی که ماه در وسط آسمان بود خب اینجا مبتدا ما کجا قرار گرفته در در اول جمله حالیه اینجا وا واه حالی هست القمر مبتدا هست خب اولین کلمه جمله چیه حالیه دیگه این فیک بد السما جمله و القمر فیک این جمله حالیه هست که قمر که مبتدا ما هست در اول جمله حالیه اومده است والجمله نعتیه در ابتدای جمله نعتیه هم قرار میگیره مبتدا در ابتدای جمله چی؟ نعتیه نعت جمله که نعت میکنه وصف میکنه نعت یعنی وصف توصیف توسیف. در رای تو مجلس و همهی بون دیدم پیروردی مردی را که مجلسش ابهت داشت حیبت داشت خب اینجا هم رای توشیخن دیدم مردی را مجلس و همهی اینجا مجلس مبتدای در ابتدای جمله نعتی قرار گرفته یعنی کل این جمله کل جمله مجلسه مهیب نعت نعت داره وصف میکنه که چه پیرمردی بود پیره مردی که مجلسش چی بود هیبت داشت بله پس جمله پس مبتدا در اول جمله ابتدایی قرار میگیره در اول جمله حالی قرار میگیره و در اول جمله نعتی قرار میگیره و فی صدر سله الوصول و ها و فی اول جملة و در صدر جملة یعنی که خبر هست مانند از ظلم و مرتع و هوخیمون از مبتدا مرتع و دوباره مبتدا و خیمون خبر مرتع و هوخیمون یک جملة چیه خبریه؟ آره ولی اون از ظلم مبتدا هست خبرش کجایه؟ مرتع و هوخیمون خبرش مرتع و حواخیمونه مرتع که مبتدای خبرش حواخیمه منتج شدی؟ از ظلم و مبتدای خبرش،, خبرش همین دوتا میشه بله خبرش جملهه چون جمله میتونه خبر قرار بگیره ببین جمله میتونه چه قرار بگیره؟ خبر اینجا مرتع و حواخیم که یک جمله هست خبره خب خود اینجا مبتدا یک مبتدا اینجا داریم که اول جمله خبریه مرتعه مگه اول جمله نیست کدوم جمله جمله او هو خیمه متوجه شدی پس اول جمله خبریه مبتداه اینجا قرار گرفته گفته بود که مبتدا میتونه در اول جمله ابتدایی بیاد،, بیاد در اول جمله حالیه بیاد در اول جمله نعتیه بیاد و در اول جمله خبریه اینجا اومده دیگه مرتعه و فی صدر صله دیگه کجا میتونه قرار بگیره مبتدا؟ در صدر سله موصول ببین موصول اللذی هست زارنی اللذی ابوه خطیبون ملاقات کرد مرا کسی که پدرش خطیب است. اینجا اللذی اسم موصول ماه جمله که بعد از اللذی میاد بهش میگن سله اون جمله رو میگن چی؟ صدر یعنی ابتدا. سله ما ابوه خطیبونه صدرش کدومه؟ ابوه پس ابوه ابتداه یکی از جاهای دیگه که مبتدا قرار میگیرد در صدر صله موصول در صدر صله موصول صدر صله موصول, موصول ابو خطیبونه صدرش هم ابوه که مبتدا قرار گرفته هم خبر هست اصل فی المبتدی ان يكون معرفة لکه یفید اذا اخبر عنه اصل در مبتدا اینه که باید معرفه اصل در مبتدا اینه که چی باشه معرفه تفائیدی بده زمانی که تو در موردش خبر میدی خب فایده ای داشته باشه. تو مثلا بگی مردی عالم است. اگه بگی زده عالم است، فایده داره. اول تو یه نکره رو میخوای برش خبر بیاری فایده نداره. بگه اصل برین از که مبتدا معرفه باشه تا فایده ای میده زمانی که در موردش خبر داده میشه. فاین افادت نکره تو جازل ابتداییها. بگی اگر یک زمانی نکره فایده داد میشه قرار میگیره مشکلی؟ چون موقع اون هدف اجرا بیشه هدف. حاصل میشه بله چهل، توفید و النكرة تو ایدکان خوب. چه زمان نکره فایده دارن؟ الان داره اینو بیان میکنه. بی گفت که اگر نکره فایده داد میشود. میتونه چه قرار میگیره مبتدا. حالا داره توضیح میده که چه زمان این فایده میده؟ میگه توفیق النكرة تو ایدکانت خاصتا او یا عام میگه نکره زمانی فایده میده؟ خاص شده باشه یا عام شده باشه. حالا خودش دوباره توضیح میده که چه زمان خاص میشه و چه زمان عام میشه. لأن اختصاصهما يقربها من المعرفة بيقول خاص كردن نكره وانه نزيك بمعرفة بيكونه وعمومها يستغرق كل أفراد الجنس فتشبه المعرفة بأل الجنسية وآم هم ببين؟ بيقول كيف زمان كاردن نكره خاص شد ان خاص بودن وانه نزيك بمعرفة بيكونه اگر عام شد خب تمام افراد هون جنسو دار بر مثل هون كلام هاي مشه كالفلام الجنس دارن مثل خولي قل یه انسان الانسان جنس داره خوب متوجه شدی؟ فائده اله هادن الامر ترجع المواد التي يسوغ فيها الابداء بالنكره به اون جاهایی که جائز است که نكره مبتدا قرار بگیراه همه بين به دو چیز بر بگردن همشون بله یا خاص بشه یا چی یا آم چون جاهای زیادی وجود داره که نکره میتونه مبتدا بشه همشون به این دو چیز ولی برگردن یا خاص بشه یا آم خوب حالا اونا رو دوباره داره ذکر ز... شد میکنه اون چیزا رو داره میکنه؟ میگه تختص رو نکره تو بالوصف خاص بشه نکره با وصف یعنی تو اگر برای یک نکری وصفی آوردی خاصش کردی مانند خطیب خ قعون زارنه سخنوری قوی ما کار چکار کرد؟ زیارت کرد خب اینجا خطیبون مجهوله اگر بگیم خطیبون زارنا، خطیبی زیارت کرد مرو ولی اینجا خاصش کردی سفتی براش وصفی براش آوردی و خاصش کردی پس خطیبون مبتدا است سفتش صفتش زارنه هم فعل با فاعل با مفول که بیشه خبر آب اضافت یاد گرفت نکرده باشه چیزی خاص میشه با اضافه قرار دادنش با مضاف قرار دادنش مانند خیر و حیلیت الحیلیت الادب بهترین زیوار زیواره ادبه که خیر اینجا نکرده است ولی از اون جایی که برایش مزافن الیه ماده خاص شده خیر و مبتدای حیلیت مزافن الیه حیلیتو خبرش الادب يا يشتهي يجا هم مزافن الیه یا مثاله کلن یشته اسعدت ای جهنم کلون با مضاف قرار گرفتن خ... چی شده؟ خاص شده چطوری؟ چطوری مضافه؟ در واقع چونینه؟ کل احد نیشتهی از سعادته هر کسی دیگه چه زمان خاص میشه؟ او بالعملی فی ما بعدها یا زمانی که در ما بعد خودش عمل انجام بده اگر در ما بعد خودش عمل انجام داد اون موقع هم خاص شده اون موقع هم چی شده؟ مانند رقبتون فی الخیری خیرون رغبت داشتن در خیر رغبت داشتن در چی؟ خیر خب رغبت الف خیری فل خیر جار و مجروره متعلق به رغبتوره پس در رغبت در خیر عمل انجام داده لذا خاص شده لذا چی شده؟ خاص پس رغبتون مبتدا فل خیر جار و مجرور خیرونها خبرشه او بتصغیر یا یکی دیگه های خاص کردن اینه که تو تصغیرش بکنی مثلا تسغیر حسن میشه حسید تسغیر رجل میشه چی؟ جلد. رجل عبد قبید کتاب کتایی ماند کتایی بان حذب اخلاقی کتاب چی که؟ اخلاق ما را چکار کرد؟ تحذیبش کرد با تصغير کردن با چی؟ تصغير. پس با این راهات مختص میشد، الان آم بودنشو توضیح میده که نکره ها چه زمان آم میشند چه زمان چی میشن؟ میگن تمام نکرتو اذا اوریده بیها عموم الافراد میگه آم نکره عم میشه زمانی که خاصه شده از آن آم. همه افراد عموم افراد, آفراد. مانند انسان خیرون من بهیمتین انسان بهتر از چارپس منظور اینجا انسان یعنی همه انسان ها همه؟ بله، پس انسان مبتدا خیرون هم خبرش او اذا وقعت بعد استفهام او نفي یکی از دیگه راه های عام کردن اینه که بعد از استفام یا بعد از نفی بیاد مانند هل احد الفدار اینجا احدون نکره هست ولی از جایی که بعد از هل اومده بعد از استفهام اومده عام شده و مبتدا قرار گرفت آم شده چه قرار گرفت ما عاقل فی القوم اینجا عاقل نکره هست ولی از اون جایی که عام شده بعد از نفی اومده نیست عاقل در قوم لذا اومده مبتدا قرار گرفت فائده. و قد ذکرون لالابتدای به نکرتی مسوغات تین اخره همه میگه برای این که نکره مبتدا واقع بشه اسباب جائز بودن دیگه هم نام بردن مهمترین اونا اینا هستند مسوغ یعنی مجاوز میگه برای این که نکره بتونه مبتدا قرار بگیره مجاوز های دیگه هم ذکر کردن مهمترینشون اینایی هستن که در زیر میخوریم اذا وقعت بعد ظرف او مجرور او بالخروف زمانی که بعد از ظرف بیاد یا بعد از مجروره به حرف اینجا هم میتونه نکره قرار بگیره؟ مبتدا ماننده اندی مالون نزد من مال است. اینجا مال نکره هست ولی ببینیم که مبتدا واقع شده ببینیم چی واقع شده؟ چرا؟ چون بعد از ظرف اومده لکل آلمین هفوتون هر آلمین لغزی شی داره اینجا هم آلمین میبینیم هفوتون بله هفوتون میبینیم نکره هست با این حال مبتدا قرار گرفت چرا چون بعد از مجبور به حرف اومده چرا بعد از به حرف لکلی او فی صدر جمله حالیه یا در صدر جمله حالیه اگر نکره بود میتونه چه قرار بگیره مبتدا معنی ده و نجم قد اضاءه میرفتیم رفتیم در حالی که ستاره روشنی میداد خب روشنی اینجا نجمون نکره هست چون در صدر جمله حالیه اومده میتونه مبتدا باشه او بعد از اضاءه یا بعد از اضاءه فجاییه ماننده نظرت فایذا نار تهیب القصر نگاه کردم تا ناگهان آتشی در می‌نورد چه رو قصر می سوزانش خب نار نکره هست ولی از اونجایی که بعد از اضاءه اومده مبتدا او بعد لولا یا بعد از لولا نکره باشه میتونه مبتدا قرار میگیره لولا اجتهادون لصاد ناس کل هم اگر اجتحاد نمیبود تلاش نمیبود کل مردم سروری میکردند خب اینجا اجتهادون باوجود این که نکره چون بعد از لولا اومده تونسه چه میشه مبتدا قرار میگیره اذا اولیده به حد زمانی که خاصه میشه از اون نکره بیان نو، تنوی، مانند الدهرو یومانی، روزگار دو روز است یامون لکه و یامون علیک ببین، اینجا داره با این حرفش اینجا با. داره با این حرفش کار میکنه؟ انواع روزو بیان میکنه یامون لکا یامون علیک یک روزی بر علی تو و یک روزی به نفع تو مترادی شدی؟ پس اینجا تنویینو اینو یعنی نوشو داره کار نو میکنه؟ بیان میکنه إذا أُطفي عليه ما يسح الابتداء به أو بالعكس. <noise> <noise> <noise> <noise> زمانی که عطف شد بر اون چیزی که مبتدا کردنش صحیح باشد ابتدای به اون چی باشه؟ صحیح, صحیح باشه یا برعکسش خب ببین طاعتون و قولون معروف اینجا چرا طاعتون تونسه مبتدا قرار بگیره میگه چون به این تاعطل کلمه اعت شده که اون کلمه میتونه مبتدا قرار بگیره اون کلمه چیه؟ قول معروف چرا قول معروف میتونه مبتدا قرار بگیره نه به خاطر اینکه قولون وصف شده قولون چی شده معروفون ما گفتیم اگر نکری واسب شه میشه براش چه آورد میشه مبتداش قرار داد پس چرا رو الان ما میتونیم مبتدا قرابین میگیم چور خود تاعتون یه چیزی برش عطف شده که اون چیز میتونه چی؟ مبتدا قرار, قرار بگیره. متری اون چیزی چه قرار بگیره؟ ببین شماره بعدی میگه زمانی که عطف شد بر اون کلمه چیزی که مبتدا به اون صحیح باشه. چیزی که مبتدا به اون چی باشه؟ صحیح باشه. و اینجا مبتدا به قول معروف چیه؟ صحیحه. چون قول درست نکرد ولی چه شده؟ واضح شده vale ما خب همچنین برعکسش یعنی برعکسش چطوری برعکسش ما بیایم نکره ای رو عطف به کلمه می‌گیم که اون کلمه خودش میتونه چه بشه مبتدا قرار بگیره ما این مثال قول معروف و مغفرت خیرون خب اینجا قول معروفون و مغفرت اینجا مغفرت معطوفة بجهاز، بقولون، وقولون المعروف ما ميتون ابتكار كذي. ما بدأ قرار بده شو وصفة؟ ميتون امتىش بكوني؟ صلاحيتينه داره. اذا كانت دعاءً يكىز دیگر جاي كميتون النكره؟ ما بدأ قرار بقرار بقوله زمانی کد دعایی باشه، دعاء باشه. بس ویلو للمتصفین. واي بر کان فروشان، واي بر؟ بعلم. إذا أريد بحتى عجب زمانی که باشه تعجب بيان بشه. مانند عجبان لزيت. کینجا. جلوسه اصل في الخبر ان يكون نكره لانه وصف للمبتدا میگه اصل در خبر اینه که چی باشه وصف مبتدا اصل در مبتدا این بود که معرفه باشه اصل در خبر اینه که نکره باشه چون ما میخوایم وصفش قرار بدیم برای مبتدا وصفش قرار بدیم برای چی پس اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه و اصل در خبر اینه که نکره باشه اصل بله و قد يأتي معرفته أما قاهي معرفة هم ميات أما قاهي معرفة ومعرفة هم ميات ما عنده هذا مولانا إن مولاي ماست هذا مبتدائي مولاء خبر ناهم ناهمك مضافهن إليها و فامجان شد شاي